من نمیدانم که این شخص این حرفها را از کجا آورده نه یکی از علمای خودتان و نه حتی خود عمر چون این ادعایی را ندارد آنچه در کتاب شیعه و سنی وجود دارد خلاف این مطلب را می رسند. تاریخ گوا است که خلیفه عمر به طور کل آری از مدارج علمی و فقی بوده و در مباقع احتیاج دست به دامان امام علی علیه السلام و فقهای مدینه می شده. این چه حرفی است که می زنید آقا در کجا چون این چیزی نوشته شده خواهش می‌کنم عصبانی نشوید آرام باشید در این چند شب هر وقت به من اهانت کردید و ما را کافر و رافضی و اهل بدعت گفتید هیچ نگفتم و عصبانی نشدم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 نکته ای که من در مطالعاتم به آن رسیدم این است که خلیفه عمر از دهاز علمی در درجات پایین قرار داشته بگونه ای که گاهی اوقات خطاهای علمی فاهشی در تشخیص احکام دینی از او سر می زده. خیلی بی لطفی کنید. خیلی. مگر ممکن است خلیفه در احکام دینی دوچار اشتباه شده باشه؟ تقصیر من نیست. علمای خودتان چون این واقعیاتی را در های خود نوشتند و من فقط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 لاکن میخوام این را بگویم که چه عب دارد که ما با هم از در صلح و صفا درائیم و اختلافات را کنار بگذاریم آیا غیر از این است که علی کرمال لاوجههو با کمال میل و رقبت دست بیعت به خلفای راشدین داد و به آنها کمک کرد چرا ما کاسه داختر از آش شویم خود او برتری و حق تقدم خلفا را با دل و جان پذیرفت چرا ما نپذیریم چرا به همان صورت که مذاهب چارگانه اهل سنت در کنار هم هستند شیعیان نمی آیند در کنار ما باشند چرا شما از ما دوری میکنید ما هم قبول داریم که علی اعلم و افقه بوده ولی این را بپذیرید که ابوبکر مسنتر و سیاستمدارتر از او بوده علی جوانی نورس بوده که توانای خلافت را نداشته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 اقاید دینی باید از روی تحقیق باشد نه تقلید طبق کدام ملاک عقلی و شرعی ما را مجبور می کنید که از برخی صحابه که برخلاف دستور خدا و رسول عمل کردند پیروی کنیم؟ اگر بر سر یک موضوعی میلیاردها انسان با خداوند که واحد و تک است اختلاف پیدا کنند حق را به کدام طرف می دهید آیا می توانید به صرف اینکه اکثریت با انسان هاست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 از یک طرف شیعان را کافر و مشتک می‌خوانید و حتی در بعضی موارد آنها را واجب القتل می‌دانید و از سوی دیگر گویید چرا نمی‌آیید در کنار هم باشید وقتی بر سر یک حکم فقهی مثل سجده بر تورت این همه سر و صدا را میاندازید و شیعه را بت پرست دیگر چه جایی برای رفاقت و دوستی باقی می‌ماند خب شما هم مثل بقیه مسلمانان عمل کنید تا این حرف ها پیش نیاید مگر امی عربه شما که حتی یک دیگر را در برخی موارد تکفیر کردند مثل هم عمل کردند که به ما میگویید ما هم مثل دیگران عمل کنیم ها؟ فتباهای فقه ها طبعاً با هم اختلاف دارد و این اختلاف ها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند چون هر کسی که از یکی از این امامان پیروی کند قطعاً ثباب خواهد شما را به خدا قسم منصفانه قضاوت کنید به چه دلیل طبعیت از احمد ابن هنبل و شافعی اجر و ثواب دارد ولی پیروی از امام صادق و امام باغر نه تنها ثواب ندارد بلکه کفر و شرکم هست؟ چرا این بونه قضاوت میکنید؟ اعتقادات شما از عجایب روزگار است چون تبعیت از اهل بیت که عدل قرآن هستند را شرک می دانید ولی پیروی از افرادی که گاهن فتواهای مخالف نص صریح قران داشته را دارای سواب و عجر می دانید فتوای کدام یک از ائمه اربعه بر خلاف قرآن است بر طبق نست قرآن مجید فقسلو و وجوهکم و عیدیه کم الال مرافق به و ارجلکم الال دستور الهی در وضوح مس هپاست و نشست شویان. قسل غیر از مس هست و این یک امر واضح است که حتی امام فخر رازی که از بزرگان علمای اهل سنت است هم نتوانست آن شود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 گفته شما تلویحاً اهانت بزرگی به خدا و پیامبر است شما میگویید که مردم بهتر از خدا و پیامبر میتوانند خلیفه تعیین کنند در سال نهم هجری برای ابلاغ آیات سوری براءت که یک معموریت مهم بود پیامبر در ابتدا ابوبکر را تعیین فرمود سپس بر طبق دستور خداوند متعال وی را عزل کرده و علی را برای این مهم برگزید پیامبری که همه افعال و گفته هایش از جانب خدا هست. چرا از اول علی را معمور نکرد بلکه ابو را مأمور کرد که در نتیجه پیام برسد و ابو پیرمرد از وسط راه برگردد؟ این مسئله حکایت از آینده نگری و حسن رهبری رسول خدا دارد. اگر در اول کار رسول خدا امیر را معمور ابلاغ می‌فرمود، آیندگان نمی توانستند برطری علی را بر ابوبکر بکر بیاوند. اگر مردم عهد پیامبر به این نکات دقت داشتند، هیچگاه با وجود علی تن به بیعت با ابوبکر بکر نمی دادند. در تاریخ می خوانیم که پس از عظیمت ابوبکر جبرئیل نازل شد و پیام پربردگار را آورد که ابلاغ رسالت از ناحیه تو شایسته هیچ فردی نیست جز خودت،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 و مبرر و بیزار از اینگونه سیاست مدارها بود و به دلیل ترس از خدا چون این سیاستی را نمیخواست و الا اگر میخواست یقینا می از همه سیاستمدارها بالاتر و برتر عمل کند اما اگر منظور از سیاست فن کشورداری بر اساس ادالت و رضایت پروردگار باشد مسلما پیامبر و علی سیاستمدارترین افراد بشر از آدم تا پایان عالم هستند با همین سیاست پیامبر اکرم ظرف مدت کوتاهی قبایل وحشی و دور از تمدن را تحت مدیریت و نظام واحد در و جامعه مقتدر را پایه‌ریزی کرد و اما جنجال هایی که در دوران حکومت امیر رخ داد ناشی از عدم سیاست آن حضرت نبود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 به همان صورت که من با کفار و مشرکین بر اساس ظاهر قرآن جنگ کردم، یکی از شما بر اساس تعبیر قرآن جنگ خواهد کرد. ابوبکر گفت: آیا آن شخص من هستم؟ فرمود خیر. عمر گفت: آیا آن فرد من خواهم بود؟ فرمود خیر. ولی ولیکن آن شخص دوزنده نعلین من است.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 عقیده ما مطابق نص سریح قرآن مجید است اتفاقا عکس عقیده شما نص سریح قرآن است و با دلایل قرآنی میتوان اثبات کرد که علم غیب مختص خداوند متعال است ممنون میشوم اگر تعدادی از این آیات و دلایل را بفرمایید آیات زیادی در قرآن داریم که من تنها به چند نمونه از این مجموعه اشاره میکنم در آیه پنجاو و نه سوره انعام میفرماید وعندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا الله و در آیه سی و یک سوره هود میفرماید ولا اقول لكم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیبه و در آیه 65 و پنج سوره نمل میفرماید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله و در و 179 سوره آل عمران آمده و ما كان الله ليطلعكم على الغیبه با توجه به این آیات حتی از شخص رسول خدا هم نفی علم غیب شده تا چرا صد به علی اگر ما بخواهیم معانی آیات قرآن را به خوبی بفهمیم، ناچاران لازم است همه آیات قرآن را کنار هم بگذاریم و یا اقل اگر به اول آیه استشهاد میکنیم، آخر همان آیه را هم ببینیم من منظورتان چیست؟ در ادامه همین آیه که از سوره آل امران قرارت گردیده آمده ولاکن الله هیشتبی من رسله هیم یشا و نیز چند آیه بعد از آیه‌ای که از سوره هود قرائت کردید می‌فرماید تلک منعن بالقیبه نوحه ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومکم قبل هازا و در آیه 49 از سوره آل عمران از قول حضرت عیسی آمده و به بما تاکلون و ما تدخرون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 آیا جزی است که اگر باید خلفای پیامبر علم قیب داشته باشند پس لزوما خلفای راشدین هم باید علم قیب داشته باشند در حالی که هیچ کدام از آنها چون ادعایی ادعای نداشتند مسلب صحیحی را گوشتت کردید ما هم عقیده داریم که همه خلفا بایستی مثل امیر علی علیه السلام عالم به علم قیب باشند و البته همینطور هم هست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 پس چون پیامبر دارای علم غیب است، پس علی هم عالم به علم غیب است. حال چه کسی گفته که پیامبر علم غیب داشته؟ آیا پیامبر اکرم مرتضا و برگزیده خلق بوده یا خیر؟ این چه سوالی است؟ واضحه است که پیامبر خاتم الانبیا و مرتضا بوده‌ خب ما هم به دلیل آیه عالم الغیب فلا یز هر علا غیبه احدن الا لمن ارتضا من رسول میگوییم که پیامبر دارای علم غیب است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 همانا در سینه من علم فراوان است. آنگاه اشارهی به سینه مبارک کرده و فرموده این سینه من مالا مال از علم است. اهدی جز امیرالمؤمنین ندای سلونی را سر نداده. امام احمد ابن و ابن حجر متاسب گفتند سلونی را اهدی از صحابه نگفته مگر علی ابن ابی طالب.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 اگر شما جویای علم هستید، بدانید من خزانه علم هستم و علی کلید این خزان است. هر که ورود به خزانه را میخواهد، باید کلید آن را بیابد. شما را به خدا قسم آیا می توانید در میان از پیامبر فرد دیگری را با این خصوصیات بیابید؟ خدایا تو را شاهد و گواه می گیرم که ادای حق کردم و وظیفه دینیم را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 خداوند بزرگ را سپاس گذاریم که ما را برای حق راه نمایی فرمود صد درصد برای ما ثابت شد که شیعه امامی برحق است علاوه بر ما بسیاری از مردم ساده و پاکتل که در پی حقیقت هستند مذاکرات این مجلس را از طریق روزنامه پیگیری می کردند و در نتیجه در نزد ما به صورت محرمانه اصحار تشیع کردند ما از شما متشکریم که با روی باز و اخلاق خوب جواب سوالات ما را دادید فقط مختصر اشکالی در گوشه دل ماست و آن این است که آیا در قرآن کریم آیهی هست که ما را دلالت به امامت ائمه اسنا عشر کند یا خیر و اینکه آیا در کتابهای ما هم اسامی دوازده امام ثبت شده یا خیر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 اگر بنای آن بر تفصیل و بیان جزئیات بود، دیگر نمی محتوی تمامی حقایق عالم باشد. قرآن مجید کلیات را بیان می کند و بیان این کلیات و مشخص کردن جزئیات را بر اخده رسول خدا می گذارد. برخی افراد غیر دقیق می گویند چون اسمهای دوازدهگانه در قرآن وجود ندارد پس ما آنها را قبول نداریم.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 بعد از تشییع شکوه مندی که از طرف آیت الله العزما مرعشی صورت گرفت، در مقبره ابو حسین به خاک سپرده شد.